حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان در حاشیه سومین نمایش بین المللی صنعت خودرو از خودروی جدید گروه سایپا رونمایی کرد. به همین مناسبت همکار گرامی هم خبرنگار واحد غیر خبر به همراه ایشان به محل این همایش رفته بود تا از این مراسم گزارشی تهیه کند. نخست از همکار گرامی هم پرسیدم که برنامه های رئیس جمهور در این همایش چیست؟ وی پاسخ داد همکار گرامی برنامه اصلی آقای روحانی اینه که بازدید از های صنعت خودرو داشته باشه مم. و آخرین پیشرفت‌های این صنعت رو از نزدیک ببینه همکار گرام آه. خب همکار گرامی در حال حاضر ایشون داره چیکار می‌کنه بله همکار گرامی خودروی جدید شرکت سایپا قرارو توسط ایشون افتتاح بشه خ... بله بله ایشون الان می‌خواد سوال ساینا بشن همکار گرام ساینا دیگه کیه همکار گرامی اسم این خودروی جدید شرکت سایپا ساینا یعنی چی اسم برادر من منم سایناست است چرا اسم آدم گذاشتlar havası mach که یه ماشین بچازن اسمشی چی بزنن اکبر همکار گرامی اینو باید در آه. یه فرصت دیگر از منو سایپا بپرسین چرا جالب خب برای ما صحنه رو توصیف کنین همکار گرامی بالا آره ایشون الان از پارکنگ اومدن بیرون همکار گرامی ظاهرا میخوان ادامه بدن ماشینو ای بابا ماشین خاموش کرد. خب بهش بگو کلاچو یهویی ول نکنه دیگه. ماشین صفر خاموش کرده. ماشین خاطرمه ببین. اوه او او این چه استارت بگو نزنه با خفه خیبا. میکنه. بگو نزنه. بله همکار گرامی خ... از ما خواسته شده بریم کمک که ماشین رو هل بدیم روشن شه. باید که بزنی. تو خبرنگاری همکار گرامی یا ماشین هل بده. آل. نمیخواد بری با علی آقا بگو بذاره دنده دو کلاچو بگیره. الو. نه خیلی رفتیم ولی با تشکرم توجه شما تا شبی دیگر و برنامه دیگر خدا میگم